رو خون پشمه چارده شم رو گفتم و نوشته شده از تو هست تو میتونم اون نصفه ای او رو هم و بدم به یه دوستی که یه فوتوکومی نظری در اختیار داره یا نظری هم نه پودی بلاخره اگر کسی علاقه من باشه این دیست و که من رو حافظ نوشتم برمونه خب یه کپی ازش تعییم کنم بیا سلمت که اون رو با باز اون مطالبی سپسی می رو میبینم رو برای وقت افتیتون بگذارید برای اینکه یک حافظ رو در اینجا سعی کنی کام بکنید و چون همش رو قرض دارن که نمیشه اینجا کن باید در عمل خواهیم دید که وقتی یک شعر رو دارن می کنن بعد بعد خواه میشه که پیگوا میشه حضر میشه بعد سعی ولی اگر نشد اولا سعی کنید تاو عالی کردن داخل جلاط هر 50 درصد بزنین که اگر نرسیدین واقعا اگر اشکالی داره اینو به من یه اون آقا بترون خاطر نگاه کرده باشیم که بعد به قول بابا دکتر پولچایی اون تو تاریخ ها در دانشگاه تخصص مولد گفت که من تاریخ اون هم نوشتم دانشجو سال آخر و آقا من فرجندم بلد سوال می‌کردم اصلا بیدم اصلا این هر کنید اصلا من تاریخ نخواستم تاریخ سلام، تو هر کتاب فارسی رو میخواید بعد بیا بخون، بخوند اگه درست خودی من نوبت چه کتاب رو میخواید؟ بیدم مرد این دادان گفت آقا آفر خودم خیلی کنم حافظ و عدوش رو هر تو به قطع روی این که من اول بکردم بهش برخورده توانی هر خود زدم که چاریش نمی کام بها تو بیا آفضه بخون بعد داره منو دست اینو رو قفتن حوضی که تو مرد تیسا می تاند توانیش باید چاریش بعد می که کردن و بیاهن می دن نخیل و مثلا هستونیز توس نو دولتی از باقصادت بزنم و توس نوید برای چند گرفتاری های خیزه نشبا بهتر است. که اینو یه و این است که حالا این که این برای به هم شکمت برشکمت به هر شکسته که به زفت تازه شد حالا این بپرسن یعنی چی؟ اون به هر شکسته که به زفت تازه شد جانش یه شود اون شکسته یعنی آدم شیده. یه وقت که بود به هم شکمت برشکمت از چی از چیز این سوای ازراین بر آدم شکسته که برخورد اون آدم شکسته تو کنش تالشه ولی از و هر شکسته که به برخورد تالش شد جانشید بخونند همچی آسونی نیست که آدم بخونه که مخصوص به هر آدم شکسته دید یا شکسته باطن نیست و نصیم صبح نامه‌ایی که برس به دوست به خون ما، باب مفروم باشه وفا نامه مثل فرس نامه مثل سفاس نامه مثل گنج نامه مثل گوشات نامه که امروزی شعر خاقانی داشت که این گوشات نامه یعنی نامه‌ی مثل سایرش که خاقوز نامه وفا نامه یعنی نامه‌ی حاکی از وفا داشته نسیم صبح ای بدوز بود؟ بود تا نامه ای که برد به مهرش از کجا بود؟ به بود اینو بدین دست آدما از تا و که هر سنطوری می‌خونن نصیم وفا که برد به دوست دیده و برای که فکر نکنید من می دکتر ادب فارس که آمده و اندکت شهر حافظ یعنی با آجنمای حافظ درست کرده بخوا نامه رو اصلا نایی یعنی بخوا در زمین لغت بخوا ها برده نامه در زمین لغت نامه ها برده و بخوا نامه رو اصلا نفت نف... نف... دوستراشم گرفته و این رو من برای شکست نمی‌گم بلکه همه چیز را همه جوان دارن گفت برجمه آمدن از دربار روم، از کجا حق، خوزر نومه را تریدیم از دانشمندی گفتن که سوالی کردن، بعد کس اون وزیر من همه چی رو باید که گفت کودر نومه را بگو، کونه میدونم. گفت تو نمیدین؟ برای هم اینکه همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. همگان هنوز واضه ناشتند. بنابراین چند کسری هم برای اون نیست و از استادش پیگه نگفته بوده یا نبوده یا این درس رو یا هر چی. و هر حال عزیز قبلی ریده ها و خونده ها مشده روز زیاد هست که ظاهران هم به نظر نمیاد و عیده کاره حافظ هم دریگن همینه که اشکالش به نظر نمیاد سالها در طلب جام جام جمع از ما میکرد بان چه به بیگانه که آقا یه لغت مشکل داره یه پیش دست دوی مشکل داره اصلا چیزی داره که نفهمم ولی خب این جامعه چیه؟ دل از ما میخواست ما که بعد بنده دل از ما میخواست بعد میخوادش داشت اگه داشت از کی میخواست از بیگانه بیگانی که من من چطور بیگانه شدم گوهری که از صدف فون مکان بیرونه یعنی اون جا از صدف فون بیرونه طلب از گمشدگان لب دریا میتردی بنده باشم این اصلا یعنی چی؟ اصلا محسود ار بشید پاید میخونه روان و راحت و تنگیز میره بود اما گیره سره در آموزش راه مکاتا آریف است در دمای sa toda Oh, واختی میگه که اون حرفی به حرف راست. راستی راستی مثل حرف اول عبجد این راست. حالا میخوای حیکلشون بکنی راستی میخوایم محشون کردی راستی ولی حرف آخر عبجد جزه حرف آخر میگه وقت حرف زدن این سفن خیلصه بول بول اینه با برد باشه چون هر تو آخر هسته یه سفن و از چون هر تو نخوصیم از چقدر دید این مشکلی یه جونو بیچه کشولو داراشت اینجا گفتی کرده هیچ جوری قابل با کردنه بگر این چیز رو اینجوری کن گرفتاری نمید گرفتاری همچون تو جرعه می کشت که سر هرطور جا جهان جهانبیم به هزت می که دولت خواهی گفت که دیگر داده این این که عرض کردم که این کتاب رو و این امروز باز گفتم که من از باز وحب دارم از باز ترک دارم از درست دادن حافظ خیف بحانه میارم و خواهانی درس میدم مولانا درس میدم برای که از زیر درست دادن حافظ درم در برای همینه که اینا آسود نیست باید وایس آدم مثلا سه روز این سال ها درست دارا به جام جام میکرد و بگه تازه بچه دانشجوی تفلک اگر اون مقدماتو ندیده باشه و نخونده باشه و نگذرونده باشه باید آخرش آخر فقط یه کار می‌کنیم اون <تزار> از این توالی عویات و از این توالی کلمات و از این موسیقی کلمات بینید لذت چون را این هست که ده هر چون که میگه ولی حالا اینجا به هرمان طلب شما گوشتون برای بنده <تصفيق> و هم باید بنده بیم اینجا به عجبت بگم یعنی براقرد فردای علمان در ایده میشون ما هم بشون ولی حقیقت مطلب اینه و بعد حالا اجزه فرمانی که ما هم میخونیم و بعد هم تا اونجایی که بشه روشش میکنیم برای اینکه خیلی هم کار فقط به خوندن تاون یه چند تا غذل تیپیکی یعنی غذل هایی که نمونه یکی از غذل های آشمانه یکی از غذل های آرکانه یکی از غذل های و از این <متحن> قبیل مطالب انلاع افتام شرائی که ممکن درهابی کنیم نمونه باشه برای سایر غذل های رو انتخاب کنیم و اینجا سعی با هم دیگه حرف و باشه. خب هر کجاو میرید. اگر نظری دارید، اگر حرفی دارید، اگر انتقادی داریم اگر اعتقادی داریم اگر برنامه‌ای به نظرتون می‌رسه. ما ما ان شاء الله هر چیزی که من نگاه می‌کنه، می‌دونم که همه اهلا و مقدرا هستند. می‌تونید نسبت به راهنمایی به نظر مسئول بفرمایید که بنده به هم تقدیم. ما هم تو گفتم که تا هم گفتم که با منه از قبل کتابهای مطالبه رو بحث نه نه اینجا قاعده و نظرش بده بفهم که تو این در زمین کتاب دیگه هم کتاب کنام از کچه را ارده باشید. عرضش صوفیه، حال دو گذردی ده ها بارچه ها کتاب کوچیکی هم هست و کسانی که درباره باره تصبح اصطلاعات مفصلی ندارن بهتر از این کتاب و مرحوم استاد ونده طریقه را هستند که ها که ما کتابی برای اینکه آشنا بشیم با مقدمات تصبح باشید بکنیم فرمودند که کتاب ارزش می یه گزارش اینو بخونید بعد با. البته برای فقط قدم گذاشتن در این وادی و مختصر اصطلاحی در این واژه می کرد. ارزش فلسفی خیلی چاو شده. نوسواش همین زن جای که تو کلی جان بغردین هست، او هم در کتابای که تو فوسیه می کنه. متال. در بگم که بسیار کتابراج به حافظ نوشته شده من هم یه تا کتاب دیگر رو بگم ولی نمیگم برای اینکه ذهن شما یاد مشروط نشید به بعد در ضرور یک کنوح از کتاب هایی که شاید یا نرشنشه نبین و فکر کنید که ما حالا پسید را کنید همینقدر شروع کنید و قدم اول همینی هست که برای دیوان حافظه محافظه بعد خود اصلا خشیمون بم که این قدر ف رو کسب یه جوری ان در رو آخریوارد بخن بعد به و زورک به موج بابان دارد به طاق شکر حافظ پر بیا تا گل برمشاتی بود نید در را سرخ بشخاتی نو تا مرا ساقی نگه چون عرقبان ریزه چه دید مرد دساقه تا مرا ساقی نگه چون عرقبان ریزه چه دید مرد فیر خون ریز قم از هفته آسمان اگر مو که بدا خیزت از هر سو بجان ریزه اگر قم لشکرن ریزه چون آشان ریزه من و ساگی به هم ساگی مورد. بنیاد دشپنگ شب بیا در در در به نار بندر قدقی شب را بیاد شراب بندر شراب را. گلابون در قدقی کنید. نسید که کردون را در دمجمارن. سبا پی چون ما دفتر اول سر کوتوش نودی خوش به ما اعمال اون پی ز خراباتی درودی خوش به گوداری واشعرش فرام خوش درودی خوش چو در دست است رو خوش به گونثر سرودی خوش که دستشون غزل خاوه و سن به هر طالب به نقا نقاط از آفتاق اندام قبل پر که خراب من در خراب بسوزاد کن در مصلاق هم بر آف که بوجود ما بر اون جناب و بر کنشاف خوبون نظر بر من یکی بر نقش برش شاغ ما یکی تفسیر باطل با نخ آیات می یکی انجید می یکی تورا تیمان یکی می دافد یکی تا ها از چند خوش خرامی بی قدر نگر از جامل دلنوشی من رو کنخواه پرید خواهده به مینو راق از مینا پرید خواهده به هشته اصل که خواهدی یا با ما پرید خواهده که از پاوز خومت به سفر خوز کنخواهده سخنهادنون در شیران سخنگانون به خود به زای بلبلاندی کرد نمی ارزان که خوشخاری نمی که از این بار تو داشت با که فرصتی که خدمت این‌ها برتم ما همون خدمت این فاضل ازنده‌ها بهانه بابت که رادوشمون مخاط داره تا بدون ماردن خاطر ولی دادو دره در حقیقت برای آشنایی بود با دستان که با همین بلندها اشتاد و دیگه از حصه‌ی بعد، در همین ساعت، همین ساعته‌هنش میان، ساعتون همه‌ها رو میارید و نوارم که در حصه‌های مدهجه درس می‌کنه برای اینکه برد باشه رو می‌کنیم این یک خذب رو که جدوماً جز اون خذل‌های توی برنامه‌انی نیست من می‌ذارم و تفسیح می‌کنم اون اما چون شیشت و غذا به بنده قبلا چردن کار و نبارا زد شده باز برای اینکه رو رو خونه پشت و نشم و دوباره همون سوزن هست نذارم اون سطحه بگردم اون نبارا همتا یکی تیز مستید کاسته باشه، دوست داشته باشه اونا هم هم هم پشت، پنشیست کردم اون غذا دار دوباره نظرهای دیگری رو میشهش بکنم زبطه این هسته آینده که می بکنم در نظر بگیرم با توجه به همین مطلبی که عرض کردن که هر کدوم از اینا یک خوبیتی داشته باشه یکی شعر عاشقانه باشه یکی شعر عارفانه باشه یکی جمعه تاریخی داشته باشه اما از یه جهتی از نظر زیبای شناسی قابل بحث باشه از نظر توابقش در تاریخ ادب فارسی نمیدونم بهش گفته بوی دربارش کرد اینا رو در نظر میگیرم و به ترتیب چیز میکنیم که اون چه تا غذایی که هر جون هستا بین انشالله تا هستا غذایی بگیرم بشه که واقعاید هستم هستا بگیرم اگر که